فرمه آجانی همون شد بارحمنا به رحمتی که آرحمال رحمی شد بحث در باره تجربی و تحویل این که آزاده جدی جربی مستحق او هست یا نه یه نقداری بسیم واضح بحثایی تحبیدیش بحث اول ما برای اینکه که پراموش نشه راجع به طاعته ی از روایات بود و خود پس حقوبت می شد ولو فیل محقق نشده و عرض کردیم هم اهل سنت و هم شیعیان علمان شیعه در... چون روایات در اینجا معارض بود در جمع به این وجودی رو گفته بود که انصاف قضیه اصل مطلب ثابت نبود مجموعه روایات استفاده میشد که اگر داشته باشه و عمل نشه اون برش کن آسای باقی نمیشه تا قوبتی نبود این بخش دوم این صحبت شد که ما یک گوه خیلی داریم یک گوه فائلی و آیا زواهر عدله مثل من افضل متعبی بدم پیش و در لبو کذا کذا یا من شرع و خم فکذا یا چین عقوبتی در شارع و خم هست این زواهر عدله ما رو گوه خیلی است یا ما رو گوه حالا تحریدش خیلی نکردیم نقدر تحرید که ظواهره عزله چی بودم؟ این صاحبه ظواهر عزله مثل منوهای سمانیو ادهی زنن قبه فائدیه صاحبه شو من افتاره اون تعمله اینا این آساب و افتاره حالا اگر افتاره متعمل کرده این قضا خود متعمله بعد منوشه کسا نبود یا روزه نبود اصلا روز روزه نبود یا شب که روزه روز قضا خود برای اختار تحمل برای نوشه شب از اروز ندیمونه چرا اشتباه کرده شب خب اختار متحمل اصطور آثار آزار ندارد ظاهرش اینطور ظاهر عدله ما باشیم و ظاهر عدله اصافم این, این بخش دوم بود و ارتکازات هم مساعد به این بود بله لا موشن. لازا که تحقیل تح... دلیل به متحمدن نه نهو چسر می کنه هم عمده هنه هم عمدیون هست ما الواقع این توزیم گذشت البته این هست که اونی که ایک سیره و هست اونی که احکام جزایی رو بر مجرد مخالفت بار نمی کنن احکام جزایی رو بار می کنن بر متمرد کسی که متمرد بر نظامه کسی که آسیز بر قانون یعنی عنوان تمروزه بر نظام برای شخص اما اگر کاری رو انجام داد و متعلق نه بود یا مثلا اشراح بود یا استقرار بود حدیث رفت اینطوری معناه کردیم مثلا بعنه حدیث به نظر ما اینه براعت توش نیست داد که شدید معناه <تصفح> حدیث اینه که اگر شخصی با این خسلت ها غناه رو انجام داد حتی اگر بدانه کنه رو کرده نه این که ندانه نصف حسیل هفته دوسته از بیارتن شعبه کرد اون جزا برداشته میشه چون او که خرده بسید ها جزا احکام جزایی برداشته میشه ولی سرس ما سرگیز محکام جزایی در رسائل و دیگه هم یا عقوبت یا معاخذی رفت معاخذی رفت عقوبت موجه کلمه معاخذه و عقوبت در جاش احکام جز احکام جزایی که مترتب است بر عنوان تمرد برگشتی میشه و این توضیح رو من چند بار عرض کردم احکام جزایی دو قسمان یه مثل تابعه واقعا کاری به تمرد ندارم مثل دیات، مثل زمان کسی چند گیزه از اجتماع رفت کنه همسای شیشه همسایش کنه این زامنه نه. یا بگه من وادار کردن یا مجبور بودن یا مستر بودن اگر خواب بودن کسی از بالا خواب بود افتاد از ازش شد روی یک نفر به اون خوش اگه در حال خواب بودن دیه ثابت ثابته چون خوابه واقع احکام جزایی که طابع واقع یعنی یک فرسون مثلا منبر یک نقصی دیده میشه میخوان این نقص رو پر کنن جبران این ترتیب اینجوریه احکام و سر احکام اینجوریه. یعنی شما اگر فرض خواب بودین اصلا شما رو سر یک شخصی باید که این شخص محیل این خانواده از یک انسان کشته شد برما با کشته شدن یک محیل تو خانواده نقص پیدا میشه دیگه مشکل مالی پیدا میشه این نقص باید بشه این دیگه تابع تعموض و عظم تعموض تمبرود و, و نیست شما سرگ داری شیشه این شیشه یک کس شکر این نقصیه این نقص باید بشه این سنخ افکام جزائی که اصطلاح بنده پور کردن یک تلع و یک نقصه این تابعه تمرد نیست لذا ارتکازات ما هم همینطوره در این جور احکام میگیم باید زامنه فرض کنین شخصی مسترده در گرستنگی مطلق قرار گرفته به خونه که حمله می کنه قضایش می خب این به لحاظ حکم جزایی زندانی می برن شراحه چون خب در, در صورت تلعه و مشروع من اما اون حکم جزایی که اجازه نرفت کرده میگن درسته زندان نداره اما خب تو با زامانی پول قضا رو هر چی که احکام جزایی که داره واقعیت است یعنی ما احکام جزایی بطور کلی شما بدونیم اگر در مقام آن بزرگی مجلس گرفتی این رو باید مراعات بکنید که احکام جزایی دو جوره یک جور احکام قضایی که رو عنوان تمرد وارد میشه تمرده بر نظام تمرده بر قانون اینا در حالات مثل نسیان و اشتباه و سهر و خواب و نمیدونجو چیزا رفع القلب عن نایمه حتی از و جنوم و نمیدوند اینجور حالات اون احکام جزایی برداشته میشه یه نمه احکام جزایی تابعی واقعیت هاییست کار به تمرد نداره اصلا کار نداره و متمردی دیگه کار به اسیان نداره باب زمان و باب دیات ا این چه میخواد حالا استرارم باشه؟ نباشه خواب باشه، بیگار باشه ملتفت باشه؟ نباشه اکرام شده باشه؟ نباشه استرار داشتون استرار داشته که این قضایی طرف رو بخور خیلی خب حکم جزایی به عنوان تمرد باشه برداشته میشه اما حکم جزایی به عنوان زمان که تو زامنی بات پیلون قضا بدی اون به جای خودش محفوظه پس احکام جزایی دو دسته شدند یک دسته در غیر تمرض میمونند یک دسته نه در غیر تمرض برداشته میشن این خلاصه بحث ویروس بود بحث سوم بحث یک تحلیل بود که ظواهر علامات مرحوم محقق اصفهانی اولا ایشون در تحلیلشون مسئله خصوق ذاتی و عقلی رو مطرح کردن و منکر حسن و ذاتی شدن خب واقعا برای یک فیلسوف یا یک فقیق خیلی مشکره چون که از علاله اساسی به اصطر انبیاء همون حسنقوم به ذاتیه این اشاعره هم که منکره هم هر اشاعره هم که و ایشون هم منکرش از که ایشون ارجاعش رو به یک بنای قغلا دادن نه مثل اشاعره کنون منکر شدن نه مثل محتضله مصفت ذاتی و شدن و بر اون اساس ایشان در اینجا قبولم کردن که این معیار حقوبت و احکام جزایی عنوان حق است و حق مولا را هم قوه فاعلی گرفتن خلاصه مقدماتی که ایشان فرمودند. چون این حق مولا ظلم عدل مولاست این رو, رو این جد و این ظلم عدل مولا و حق مولا این تابع مصادفه با واقع نیست این یک قمه فائلیست یعنی اگر کسی به عنوان که این مایه شراب بخورن است جروله این خوره پایدو داره این استحقاق و قوت داره چون همین که به عنوان شراب و اقدام میکنه در اون خالفت مولا این حق حرمت مولاست یا به تعبیر خود ایشان آقای خویی در کفایتون میگی تریا خیلی شایی علی ظلمان علمولا حق کن حرمت مولا چون عنوان عنوان حق و عنوان ظلم بر مولاس در این عنوان فردی نمی کنه و این که واقعا شراب در بیاله نیاد یا به اصطلاح متاخرین اصولی ها چه محصیت باشه چه تجربی باشه از سر این فردشون این طور بودشن که در محصیت مخالفت قانون بکنه و مطابق در بیاد واقعا مخالفت قانون باشه در تجربی مخالفت قانون بکنه اما واقع در نیاد مثل خود کفایه مثل مرموهای اسمانی معتقلن ملیار در استقاق همین قبع فائبی این مطلب است که در قلمات ایشان آبایی ما از شد که دیروز شروع کردیم در احبیل این مطلب که این مطلب هست که ظلم مولا که طبعا هدفشون حتما اینا لخواه در و برموان فقیه و اصولی هستن که در مفاهیم دینی و اسلامی هستن تأثیر شریعت هم هست یعنی مرادشون تفسیر قانون بطور کلی نیست تفسیر فقه خب و روایات رو شریعت مقدسه که مخالفت در این شریعت مقدسه حق حرمت مولا خب تلازم مولا یا واسه خداوند متعال باشه یا مشرع دوم که رسول مکرم اسلام هست. اینا حق به رسول الله حق به خداست زنذات استحقاق حقوق داره این یک تفسیری که اینا ترمیده ما دیروز برای این مطلب عرض کردیم این مطلب اصولاً مجموعه مطلب ایشان به دو تا مطلب برمیده یکی این مسئله حق حرمت مولا و ظلم علم مولا که این تحریل قانونی میخواد و حقوقی رست یکی مسئله حسن قبل که آیا ذاتی هست به تحریل ایشان عقلی هست به و ورزه یا نه ایشون میگه بنای اوحلان سالی حفظ نظام حفظ جامعه. این کار می کنن. این دو تا مطلب در کلمات ایشان آمده این دو مطلب با جزادانه مورد بررسی و قرار برامی اما مطلب اول این مطلب اینکه مخالفت و استحقاق و عقوبت به خاطر و حرمت مولاست این رو ما ارز کردیم یک تحلیل داره با دنبال تحلیلش شد من توضیحاً دیود ارز کردن خود نظام های اجتماعی و خود قانون دارای تفسیر و تحلیل و تیوه بناسه این اونا باید تحلیل بشن فرض که مثلا با مثال اگر مثلا در جایی ما گفتیم نظام استبدادی هست نظام استبدادی بر این اساسه که حالا بقاله برده قانون جنگر یا بر این یک فرق به خاطر صلاحیات ویژه ایز دارا ادعا داشته مثلا برای خاندشوان خدا در خیلی رو گذاشته مثل اراده علافوی بوده که این بوده زل الله بود از این حرف بالا این به اصطلاح برای اینکه نیروهای های جامعه متفرق نشه متشت نشه این شخص واحد تصمیم گیرنده باشه در امور جامعه و ازوا اون مراتب استبداد هم همیشه در تاریخ فر می و از, از مستبدین به همین این مقدار که گرد قوانین بکنن اکتفا میکن اون خب از مستبدین در طول تاریخ، مردم رو برده خودشون حساب میکردن میخوستن میخریدن فهم نمیکردن اما نظام بردگی رو مراعات میکرد بعد مثلا فرسیون نظامی به نام نظام مشروطه سلطنتی مفرش شد در مقابل رو. نظام به نام نظام فرسیون جمهوری مفرش انواع مختلف نظام های اجتماعی که هر کدوم دارای تحلیل و زیر بنای خاص خودشه که جای محل بحث نیست یه تحلیل هم برای خود قانون که اساساً قانون چیه؟ من در بحث‌های صادر عرض کردم اساساً قانون بر این اساس تصویر شد که در مقابل همون نظام اندیکتوری یا نظام استبداد در این مقابل اون قانون بر این اساس تصویر شد، تصویر قانون. تصویر قانون بر این اساس شد که ما بیاییم برای اداره جامعه یک واقعیتی رو خارج از شعاع شخصیت حاکم پسیر بکنیم در نظام های استبدادی قانون وجود نداره قانون در حقیقت با ورزیاد یا شعاع شخصیت حاکم در نظام استبدادی اون اساس نظام استبدادی و ولذا به اصطلاح آقایان قانون مدرون نداره نظام استبدادی روحش در اینه قانون مدرون نداره امروز حاکم ای رو سلاح انجام میده پردار چیز دیگه صلاح دیگون انجام میده او دنبال صلاح مملکت و قول خودش و رقیت و برده هایی که در اختیار خودش افراد مملکتش او و کشور هم در حقیقت مجعود یعنی اون یک حساب در مقابل این فصل این مساله این مساله مشرو دریغا از سال 1318 با امان توازای اداره شروع شد و در سال 1624 بعد از 6 سال, سال با ترتیب مجلس شورای ملی توسط سلطان رحمظفر دین شاه و اجازه قانون گذاری نظام استبداد تبدیل به نظام مشرو شد در نظام مشروطه اساس بر این بود اساس نظام مشروطه که اصولا یک چیزی به نام قانون داشته باشیم خارج از شخصیت شاه بگذر بکنیم که همه حتی خودشاه هم به اون بشن این نشه که قانون همونست که شاه گفت شاه گفت اینطور همون بشه گفت اونطور همون بشه ما از اون نظام خارج بشیم اگر آنین حال داشته باشن کتاب تنبیه و ملده و تنظیبه و امیال و میشه من گایی جا بوجه هم مال معلوم ناریمی رو نگاه بفرمین که انصافا حتی به عول دستان ملیگر آهای ایرانی که حتی عقیده هم دیدیم نظرن بهترین کتاب در دوران مشروطیت در توجیح مشروطیت هم دیستی معلوم ناریم با این که افرادی روزن کن و این روز از هن نوشتی میشود افراد دیگر بودن عده من دیگرها بودن عده چپ بودن اوائل نیوائی و سر کردن بینیویسن مقالات نوشتن, نوشتن، اوزناماها نوشتن اما معترضا تحریر علمی دقیق همون رو نایی نوشتی همین که ایشون هم نشن خب هم بشید در ازول این بساله این را شروع میکنی به این طور یه پازشان این روز به صفاق علاقی متصف شده لا یسأل العمایتع و هم الان. <تصفيق> الان شاه داره این صفات هیچ مسئولیت نداره همه مردم مسئول هست به استثناء شخص شا. لا شا به شاه لا یسأل و ولیشاه به صفات ربوبی شاه که نه صفات ربوبینی پیدا کنه لا یسأل العمایتع و هم یسألند همگی مسئولند خب باز درست میشه و انصافش خیلی مباحث خوبی ایشان داره من از همه کتاب نخوندم و این صافت نسبت به ایشان حضرت کتاب ایشان بعد از مشروطه دوم در حقیقت در زمانهای توجیه مشروطیت نیست چون یه ازداد سریع و آن خود به مدد این سال پیش بعد از اون که دو مرتبه که فنافر آن خود هستید جرش به اعدام مرموش هزا نوری قبل از چیز در همین حدودها کتابیشان 1227 اجریه قحملی کتابیشان شاب شد از کم مشروطیت سال 1224 من باید اون بحث میشه که اون بحث است. من باید این قصه هم. این بحث که اصولا قانون یعنی چی این اسیامت و برای ما ها. الان با عنوان تفسیر قانونی خودمون از قرآن از سنن از مجموعه احکام الاری چه به صورت فراحض الاری چه سنن بیرم برکرم و یا حتی سنن احمد علیه این تفسیر ما از این چیه چی رویه از که این تفسیر البته انواع مختلف داره از من فعلا همین دو نهرش رو متحفظ میشم اون بحث دیگه شد چون جایش این جنیز جای خودش باشی از کنیم به طور کلی ما دو برخورد میتونیم به طور کلی انجام بریم دو تفصیل و دو تحلیل ارائه بریم یکی این بگیم در حقیقت این شریعت مقدسه چون در جامعه بوده که نظام بردگی بوده روابط عرض و مولا بوده ما بیاییم شریعت رو بر اساس روابط عبد و مولا تفصیل بکنیم آیات روایات احکام حتی موارد و رو بر اساس رابطه عبد و مولا تصیبه کنیم در رابطه عبد و مولا من دیروز توضیحاتش رو ارز کردم نکته اساسی اینه که عبد به تربیره کفاید به شراشر وجوده به تمام سلول هاشی میلی که مولا کنیم چون عبد میلی که مثل فرسون مولا خانه داره ماشین داره به نسبه عبد هم تاره که این خایینی خایی در تصویرگیری ها و تصویر ها تاثیر می تمام هر تماما ملک مولاست. من دیروز عرض کردم ا دی موترقدن اصلا یه مرحله تاریخ نه مرحله بعدی مرحله مثلا فودالیسم که شخص تماما ملکه ارباب خودش نیست این رعیت به بلکه با اون زمینی که درش کار میکنه ملکه یعنی با زمین هموارزمی خزا فروشیه اما فرض کنید مثلا این کشاورزی در زمین بود این به علاوه آزادی داشت فرض کنید مثلا که زن میگرفت چیزی میخرید چیزی اما با زمین یعنی کار او خیزو بود ملک در با خودش و بعد ها در نظام کارگری آزادی که به شخص داده میشه به کارگر خیلی بیشتره کار خودش در اختیار کارفرما یا سرمایه‌دار میذاره فرض اما در نظام عدید و مبادی خود زادت عبد مکمولاست دقیقه بکنه زادت عبد خواهی نخواهی در این نظام مجموعه تفکراتی که میاد حتی تفکرات قانونی باید متناسب با همین ملکیت باشه حتی تعبیرات ادبی حتی اگر بنابرای تنسیلی بخصوی مجازی گفته بشه، کنایی گفته بشه، استعاری گفته بشه. و نزد در آن کلی هم داره از زره الله مثلا، هبدم مملو کنم در را شهید که دوست از کردن شما این مثلا اینو در بوده کارگری در کارخانه کار میکنی کار میکنی، این حالا هبدم مملو کنم در آن را علاشه. اون هبدم مملو کنم در را شهید. اون از با تمام وجودش ملکه دیگری. این که کارشون که دیگری باشه دقیق و این نکته خود دقیق بکنید در اینجا خب حالا این نظام بلا اشتال در تاریخ بوده و این نظام اجمالا در اصدان تأیید شده حالا کنه درگنه انصافش هست لیکن محدود شده اساساً به مسئله جنگ اساس اولیش جنگ، و طبعاً خود جنگ تدیده خوبی نیست بلا اشتال نمیخواد بگیم حالا جنگ تأیید که کار خوبیه. خود جنگ کار خوبی نیست. با دیگه یکی از لوازمش برای اون پیداش شد، فلسفه به جایی که شخص رو در جنگ حتما بکشن، این فرصت رو پیدا کرد که اسیر بشه، داخل زندگی بکنه، چون اون یواش و خودش آزاد کنه، سر خود اون زندگی‌اش برگرده. نسبت به جنگ یک نقطه پیشرفت حساب می‌شد و اینا اصل مطلب برمی‌گرده به جنگ. دقیقاً می‌ذارم من علاوه بر بحث بر ویدیو نه می‌شم. با در آخر از هم اون نقصه ایتی مربوطه به مانه نفسی. اجمالاً در اسلام شده اما در اسلام خود دقیقه بکنی رابطه عبدالمولا رو خود فقه تعین میکنه من حرفم اینه یک کلمه ما نه این در اصول و در موادس اصولی و نتیجه گیری و اصولی اون رو رابطه عبدالمولا تفسیر میکنیم شبته نکنیم اون به نظرمون رو شده یعنی مفهومهای محقق اصفهانی بر اساس اون رابطه عبد میاد میگه تجربی مثل معرفت قهف فاعلی داره به و عبودت این اون در تحلیل قانونیش برای ایشون تفسیر تعبیر نمی کنه ایشون بعد جامعه و اینا رو مطرح میکنه تمام رو مطرح میکنه اصو و اختلال در جامعه کی شرط باشه در واقع اینه یعنی اونی که ریشه این تفکر اینه حالا این توضیحش از من بحث عبد و و حقیقت خود در اسلام شبیهیده حالا با اون بحث میشیم ای که مربوط به کارهای و اصولی ما الان میشه حقیقتش این بود اون نکته اساسی اینه اون نکته اساسی وقت در مقابل این رو من مقابلشان بگم در مقابل این ما اسمش رو نظام قانونی اون رابطه عبد و رو نظام. در نظام قانونی دیگه مولا محرح نیست اگر دستوری هم هست اگر امری هست اگر نبی هست اگر گفتنی هست اینا همه برمیگرده به تجلی اراده مردم اراده ملت قانون و نظام مثلا پرسن در یک برهه از تاریخ مثل همون قدیم خود سقراط اینطوری بود دیگه در اونجا در یونان قدیم میآمدن و از خود مردم جمع می شدن مردم شهر خمهشون بدون اینکه خودشون نظر میدادن مستقیماً به اصطلاح اونجا دموکراسی دمان مردمکراسی بكوند حکومت مردم این حکومت مردم رو اینجوری روشیده اون جرثه ای ان یعنی که سقراطو محکومه نکرن همونطور دیگه مردم آتن جامعه در باغنا صحبت کرد با پرونده شما در برای محکوم شد از طرف دادگاه و مردم هم خرید کردن که اعدام بشه سقراط که خودش اون جام زهر رو به اصطلاح سر تابلوی تاپری هم حتا لو اعدام سقراط که درش در حالیاست علazem به هر حال خودش اختیار این کار انجام داد خود سقراط این بعد به این شکلش در آمد که مردم نماینده بگیرن چون میگه برجوری شد که امکان است مستقیم با آرا مردم نشد مردم نماینده بگیرن در اسلام هم این مرحله آمد به اسم بیعت حالا شرک داره که من هم بردم برس تو برسه بلاد فقیه شما را متعرض شد این مردم براش شد نماینده بگیرن و اون نماینده بیانگر اراده مردم باشه پس در نظام قانونی ما یک چیزی داریم یک واقعیتی داریم یک حیرتی داریم خارج از اراده مولا این طور نیست که مولا مثلا مولا بگوه آب بیار اون واچیم میگه نه یا اون واچیم میشه گفت این کار انجام بده نه این طور ما تاثیر نکنیم قانون رو ما در قانون اصلا مولای در نظر نگیریم هر در نظر نگیریم اون که در نظر میگیریم یک واقعیت اجتماعی که مردم هست اراده مردم هست زندگی مردم هست این زندگی رو خود مردم میخواد اداره بکنن فقط برای کشیدن شیاوا میگن مالیاتین همه مردم مثلا میگن بله مالیات بلین. من به سا. این اینکه این مالیات دادن اراده مولا که اگر من مالیات ندازم هرک مولا کرده باشن. هرکی توش مثلا نه بود. من اگر مالیات ندازم به جامعه خودم زرده. خودم دارده. این اینطور نیست که حد که برای کسی باشه. حد برای خودمون. اینطور نیست که ظلم به کسی باشه. ظلم به خودمونه. اصلا نیست شخصی با حنوانم. مولا بفت افراد قلات غالونی در تاریخ بشن سابقه طولانی داره یه مقدارش در سیریونان و آته یه مرداشت هم در این همین اراح خیلی ما که هم بود یه مختصر یه هم بوده پنگزار سال قبل هم نه از خود از یمن یه مختصر قوانینی بوده مثلا توی ایران ما نبوده تو خیلی دو کشور دنیا اونی که دیگه رسمن شروع شد از بعد از به اصلاح انقلاب کبیر فرانسه که جمهوری فرانسه تشکیل شد، نظام سرکشت تبدیل شد به جمهوری، این یواشاش دنیا رو گرفت. یواشاش این نظام به عنوان یک نظام حاکم مطرح شد که در همون زمان هم فارسی در نسخه کتاب مونتسوری و خیلی عجیب با این که بعد از علماهای ما معلوم و کتاب رو نخوندن قوان رو, رو اینا همین مطلب رو مطرح میکردن اون وقتی این سه نظام معروف جمهوری و مشروط و استبداد رو مثلا میده فسنون منتوسیو و اصحاب که داشتن اصحاب خاص خودشون تفکرازشون تغییر نظام جمهوری میکردن کشورهایی هم بودن که تغییر نظام مشروطه میده اینجا که ایران هم همین موفق شد بعد از استبداد در مقابل استبداد ترخی جمهوری مطرح شده بود اشتباه نشه در جمهوری در ایران محرفت شده بود قبل از نکنه اونی که عامه مردم جا افتاد را جا... کسی گنبادش بود یا نبودش من نیم به اون را نیم کنباده بست داشت در خلیه به جای نظام جمهوری نظام مشروطی از جا افتاد نظام جمهوری سواده تر شد مثلا قبل از نخیل به 20 سال در ایران محرح بوده لیکن خیلی قبی محرح نبوده این زیب نه از ها که نظام مشروط جا می افتاد دیگه ترمی جمهوری خی موفقهش و نظام مشروطهی کشینگی زمان نوزدتن به هر حال من از که نظامات اجتماعی رو نمی خواهد نظام های اجرایی رو مفرح بکنم تفسیر من الان رو خود قانونه. از اون زمان در این سفر کردن که ما بیاییدیش یک رو به آن قرار بدیم با این خانون قد مخصوصا خانونه اساسی که به اصطلاح اصطلاحا را طبق این نظام جامعه اداره بشه و همه هم در مقابل اون مسئول باشه شخص پادشاه هم در مقابل اون مسئول باشه اصلا مثلای پادشاه مطرح نیست در نظام جمهوری در نظام سلطرح مشروطه شخص پادشاه مطرحه اما بقوله خودش رو شخص اما حکومت نکنه فقط سلطان باشه باشه از رمز دیگه نرمشه اما حکومت دست به سا مردم باشه. دهکانک تن تسما به حال من هر نظام سیاسی و کلام رو اصلا می کلامو میاد اونی که اساس کار ما اسرار نظام قانونی حالا اینطور حالا اون نظام قانونی چه جوری باید اداره بشه بحث دیگری تنظیم بشه اون بحثی تسما دو نظام رو فعلا در نظر میگیریم یک نظام بردگی و عبد در نظام عبد مولا اون چیزی که حد اراده مولا عبد از خودش ای نداره و به تعبیر قرآنی عبدن مملوکن لایق داره علا شئی حالا در این نظام اینجور میگرد عبد باید اطاعت مولا بکنه چون اگر اطاعت مولا نکرد و هر چه قرمت مولاست با این قلاعب ده انسان مولای شخص دیگری مالک شفت دیگریه این این توجیح برای لزوم اطاعت عرض بر مولا مولا بر است من به دیگرم عرض کردم ما در طی تاریخ وجودام حساب جمهوری افلاطون تا ارسطو دارام باشه در جمهوری افلاطون تصریح میکنه به بردهگی ذاتی و طبیعی که خداوند اصولا بشر رو دو جور آفیده یک بشر ذاتن بردر یک بشر ذاتن مولا شون تصدیر کرد تصدیر بودم این فیکسی رو این بحث ذاتیه بحثی این طور نیست که ایک باشه یکی درد مرزان ذاتن درد هست یکی درد مرزان ذاتن مقرآ و باید درده اطاعت مطلق نصد به اونگاه شده تعمل تصور رو تعمل این ببینید این جونیان میگرد یعنی خب در حقیقت این بردر تو با جان بکنه میادید تو هرقدر جان بکنی چون تو و کار تو شعاع شخصیت مولاست تا اگر اطاعت مولا نکنی ظلم به مولاست اهانت به مولاست حقی حرمت مولاست سعی میکنن از این را براد البته من نمیخوام باز بخص مخصوصاً مخصوصا کومونیست ها و این طایفه ملحدین کلن مخصوصا این طایفه اینا سرشون بر اینه که بگن این کار رو دین انجام داده یا به دین بدن یعنی این توجیه رو دین با عنوان بردگی و تنفیذ بردگی در جامعه به مردم یاد داد که شما هیچ، هیچی نیستین ولی حقیقت شخصیت مولاد شما هیچ کاری اون چی که مهمه مولاد چون یک تصویر معروفی از کاریخ دارن که همیشه سه اصل معروف زر، زور و, و تدبیر با هم هستند مراد از مولا در اصطلاح ما اون مظهر به اصطلاح زر و مراد از سلطان هم مظهر زور و مراد از روحانیت این هم مظهر تدبیر این در حقیقت میگن یک نوع توجیه دینی است دین میاد این توجیه رو میسن البته خب مساله حد مولا اصلا تو دین نداره شما همین میگه میگن اینکه این زویو در مولا است هرچقدرت این یک است که به اصطلاح در طول تاریخ انجام شده برای اینکه این بعد عرض رو به بردگی خودش تثبیت بکنن در مقابل مولا قیام نکنن ولی خون معلومه این مولا یک نفر عبد از است مخصوصا از مقالی اون کنه تا دو تا پنج هزارتا عبد داشتن خود این حکم حزام که دایی حضار خدیجه از یا حضار, حضار خدیجه است در روز ایده قربان چون دیدم هست هر سال اینقدر در دلاشون سرپرماینده و معروف مفعوز دیگه ایشان اینقدر درداش هر سال در عید قربان بعد هزار تا عرق رو یکجا آزاد می‌کنه روز اید به صح هزار تا دیگه آزاد می‌کنن میشود چه اعمال مهمی بود باشه نگهداری اینها بالاخره میشینن لذات و گوسه اندیشه چه چاره می‌خواد ملکه می‌خواد چه واسه لذات اینسا حالا اینکه شما کام دقت بکنید پس یه توجی که این منحرفی میکنه که البته قوم صاحبی ظالمانت یه توجی متخرفه رفیق ببین حالا اینا معتقد ها میگن گاغوی بعد از روحانیون به اسلام ها و عاد الصلاطین بودن، همراه سرمایه‌دارها بودن، همراه ظالمین بودن، بودن در تاریخ، همه ازجان داشتن، کریستین بوده، سنیام بوده، مسیحیام بوده، از اون وران کسایی که به شدت مخالفت کردن اونا بودن، تو سنیام بودن، که شیعه‌ناز و شیعه منشیان عمر راضی و مخالف نظام و مخالف سلطان مرعوف بود در منشی اریشته اما اینا رو به بگین و اثر دین ارجاوودی موقع ممکن بعد از عدیان خاصه فرضون در هند و در یه جای دیگه یا در کشورایی مثل فرضون مثلا سوفوسیه آمریکا ممکنه الان مثلا جادوگر حبیب در خدمت سلطان باشه در مدت طول باشه ممکن میینه من ممکن نیستم اما یه تضمین دادن به تمام عدیان این دین مقدس اسلام یعنی سماوی به سوال خودی چه مسیحیت چه یهودیت انصافاً حرف یهودی است. اما یه مطلب دیگه هست وقتی که برده ذاتاً ملک مولا شد این توجیه خالی نخواهی خواهد آمد که این کاری به دین رو نرفانه داره اینی که برده یا سع... این سعی باید بشه آنه ما خواهد بیم باشی و یک نفری که کو یک لغری سلاح جدا مادر جدا شهر جدا مخصوصا در خود آمریکا امریکا که بردگی رو بعد الغا کردن یه مقدار زیادی بردیگی که امریکا میوازش رو آنتیشونیستی حساب برنامه نظام بردیگیش بشه دادو امریکا شمالی مخالفت بود این جنگ جنرال شمالیتون رو نگهنده باشین این منشأ شد که زمان آوا بین که بین مسئله بردگی و بعد الغا شد به شما قبول شد و بردیگی رو برداش یه زیادی از این بردیگی دوزی بود این تو آفیقا کمی می داشتن افراد می دوزیدن می بردن اونجا بردن می گردن این بود دیگه یک چیزه وحشتناکی بودن یک نظام انسانی نبود وقتی که این مطلب پیش آمند خانی نخانی به الله قومی یک انسان مسترد این یک انسان مسترد چه رفتی به این سو باید بکنه؟ این بحث رو باید با تبلیغات با سهروردی با فلسفه بقول روز ما با فلسفه یه کاری باز بکنم خب نمیشه که خب کی می‌گه تو همین راه باز می‌شونه وقتی مسئله مالکیت اومد خاکی نه به دنبالش این خواهد بود اینکه کارو باید دین توجیه بکنه این توجیه دینی نیست وقتی به دین نداری اشتباهی نه که انصافا نه ما دفاع محمدفاطه دین بره و مفتیس کنه خود این که ای موجودی تمام وجودش ندی که دیگر میشه خودش که بلکتر شوهای شخصیت بزنه طبیعتاً این نظام اختزاشینه یعنی طبیعت این نظام این اختزار داره که ابداً مملوکاً لا یهده را علاشه بیم خب نتیجه چی چه میشه؟ بشه نینا مخالفت نکنید نمیگن اگر مخالفت که مثلا اگر محالفت تو راحتی پیدا نکنی یا نه اگر مثلا در سابقه کارها بسیار شاق و سنگینی هم بینو میدن. تو اگر این کار رو انجام ندی مولا احانت مولا کرد زند مولا کرد این فکر مولاست آوروی مولا رو این توجیه کردن در طول تاریخ بوده و از کارم این تا لازمه نظام قدرگیست از من توضیحاً از که جیوز ما باشیم زواهرای مبارکه ما در فریم آیه تمثیل نباید رو نماریدن اما فقهای با انجام دادن دروس من توضیحی را تجویز کردند دیگه اون توضیح رو تکرار نمی‌کنن اما بحث دارم مراجعه بکن در حال این بحث اول در مقابل این نظام بردی اسمش رو ببین نظام قانونی سیاسی دین الهی الامر حتی ابن الصراط عبد مو مطلقه لهم حتی خب الابر لا الابر یعنی جای ارتبار انه هون بهادل اسلوب بری بله. حتی بهادل اسلوب لا یو یعنی به سوال محرم الوقت از کردم اصل نظام بردگی در اسلام بوده اینجای این کارش نیست اما اون که مشکل اساسی که الان ما این قسمته اون مشکل اساسی آقایان به خاطر سیادت ذهنیشون خیلی از جاه و عبد را محدود کردن و به تمسک به مبارکی کردن. پس در کتب خب این کارش نیست. قرآن کتاب قانون در است. متوکثیاتش هم در اوج. خب وقتی میگه زر و الله و مثلا، مثلا نیست. مثل عجبه. تعبیر عادیه. قانونی خود تعبیر مثلا ان الله لا يشتكي مثلا باوز دادن تا این مسئله میده کشید مسلمین اون رابطه به بردگی نه بردگی نیست نه خب در مقابل این در نظام قانونی در نظام قانونی روشن شد در اینجا دیگه صحبت حق و حرمت مولا و این حرفا نیست اینجا چه میاد رو خودش است مسائل خودش است ونچی که به نفس خود شخص برمیگرده و اگر شخص بخواد نظام قانون نظام رو زیر پا بذاره انی که برو شده زیر پا داره در حقیقت حق مولا نکرده حق به خودش کرده ظلم مولا نکرده ظلم به خودش کرده حالا چون وقت تمام شد من فقط یه توضیح خیلی کوچیکی این عرض بکنم حالا این اجازه میکنی توضیح بیشتری ببرید وقت لذا خوب دقت بکنید ما اگر بیاین اینجوری درمه بکنیم که آیا ما وقتی یا ایوهاللدینا آمنو رو مثلا مثال بزنم مثلا عقیم و این رو چی تفسیر بکنیم تفسیر این بکنیم که خدا مولا و مردم برده یا تفسیر این بکنیم که خدا حقیقت وجود و اون که سلاح مردمه که به خود مردم برمیگرده آیا اینجور بر خود انصافش از زواهر آیات اقتداعا نمیاد اما از لوازمش میاد من اینوز این مطلب از ما که پرا توضیح دهدم مثلا اگر ما این رو معیار قرار بدیم که در نظام مولا و عمد ظلم به مولا حسابش میکنند، اما در نظام قانونی ظلم به خود مردم حساب میکنن این ما این معیار قبول کردیم سؤال مفت آیه ما آیی موارک میگه و ما ولن منا ولات کن کار ما هنگوسه هم یاد این میارش با میاره عبدالله نیم میخواده. این میارش با میاره قانونی میخواده. و ما ولن منا و این بناهوه. این اگر ما چیزی گفتیم نه به خاطر ما نه اینکه هر کی ما باشه. حالا ترجیح که ساکت باشیم یوزر معلومه. خدا قرآن یوزر میسازه ما ما ولن منا ولات کن کار ما هنگوسه هم یاد دهیم. به ما ظلم نگردن این یک مثال حالا من مثالا یک مورد که روش فکر بشه چون وقت آمون شده نکنم موضوع باید میشه یه روایتیست آنه یه وقت که انا فیداش رو خاندشان پیدا کردنشان مشکله اینکه این, این مطلب رو به حضر رضا عرضه نکنه حضر رو چی میگه میگه نقولون انناس عبیدون لکن برده‌ی شما هستن انناس عبید فقال علیه السلام نه اینا عبید ما نیستن اینا لازمه برایشون طاعت ما نه این که عبید ما باشن کسی عبید ما نیست برده ما نیست بنده من نیست اگر روایت پیداوکی اینجای لکی بیدار چون خیلی دور از آبادیه روایت از امامزا تواصل آسا و محاله به نظرم سندشم خیلی بد ندارم دیدم سندشم خودشم سندشم اما الان تو زهنم این رده حضور زهن دارم. امام مثلا نه ما برزه ما نیستن قبیل ما نیستن نظام درزهی مطرح نیست اونی که در اونجا مفرحه اطاعت ما بر اونها لازمه اینطور نیست که هر زننام بیتن لایخ رو علاشه. این مطلب را نظام نیمه بیشتر توضیه از اونها از بحث خارش رو میخواستیم خارش رو میرسیم هر اون آیا شانسی ما رو خواهش کردن زد الله علی محمد و